ای بله، اما در خدمت کارشناس امنیتی و انتظامی اطلاعاتی ترافیکاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ هستیم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 توجه کرده و اونداو کنیم كنيم. این معنیش دقیقا چی میشه سرنگ؟ ببینید معنیش این است که ما در همه حالت پیروی فرمایید شما احکامی حضرتی آقا هستی ما پی روی از دستوراتی شون سره و هیکاری پلیسه. ها سرنگ، با. حالا سوال من اینه که یعنی حضرتی آقا در مورد مسائل اینترنتی هم رساله احکام دارن؟ ببخش متوجهن میشم چی چی میگوین شما. ما ایشون برای احکام و مسائل شرعی رسالی ندارن؟ بله, بله. آیا برای او یه ماشوه اینترنتی و مجازی هم رساله دارن و پلیس فتا همینجوری نشسته اینترنت رو با رساله ایشون چک میکنه یا چی کلاً نه بی بی نه خیر رساله ندارم ولی یه سری فرمایشاتی دارن که ما اون هارو سرلو هیکارمون قرار میده مثلا اینکه چند وقت پیش گفته بودن پلیس فتا بله. حواسش به همه چیز هست میگی دیگه اون یه یعنی... بله بله بالاخره بله ایشون لطف دارن لطفی لطفیشون همیشه شامل حال خیلی. ما شده سر این بحث خیلی تیا. بله این این پسری گفته بود که عکساشو با دخترامان منتشر کرده بود آقا ج این عزیز. کاری شما این صحبت تا شما زشته عجبهاخید ولی جا دارد بگم مقامی ما از ذه رهبر همیشه شپولیس تا به اشکالی مختلف مورددی تفقات قرار دادهن بله. بله. خب سرنگ حالا میخوام میگه خبر دیگر رو م ببین مدیر کل امور اجتماعی وزارت کشور به. اعلام کرده تو ایران سالی 60 میلیون لیتر به. مشروبات الکلی مصرف میشه نه من بعید میدونم انقدر مصرف داشته باشیم ما خیلی خبا بله. چون شمای 5۵ میلیون دیگه خیرشه ببینی مسئله اینه که با این همه مبارزاتی که شما می‌کنی، این میلیون ها لیتر مشروب چجوری تو کشور مصرف میشه سرهنگ ببینید نیروی انتظامی حتی اکثر تلاششا برای مبارزه با مشروب خاری انجام میده ها. ولی خب ببینید ما تنها هستیم در این جبه خب وقت سرهنگ در جبهه حق علیه مشروبات الکلی. نیروی انتظامی مسئول دیگه بله بله. سازمان بازیافت جوواله که نمیتونی بیاد کمک شما در اینجا. را. راستش حضرت آقا سرنگ در این مورد راهنمودی ای چیزی، رساله‌ای، چیزی ندادن. خب ایشون همیشه از تلاش های پلیس در این راه تقدیرات تهنیت و عمل آوردنا. واقعا تلاش میکنید. بله. در اصل همین تلاش هست که مواد مخدری هر روز ارزانتر از دیروز و مشروب فاروقون ترج دیروز میشه دیگه بله. میگم سرنگ من یه پیشنهاد بدم از طرف رسانه به شما ها بفرمایید با همین شب پیشنهاد داتی شهر وندانو گوش میکنید بفرمایید میگم شما بی یه سری چیزا باشی دیگه خودش درست میشه دیگه نمیفهمم آقا جون یه بار دیگه بفرمایید چرا نمیگیری سرنگ میگم شما دست از سر این مشکو و مواد مخدر رو اینا بردارین این به جان تو اوضاعش بهتر میشه آقا جو این چه چه حرفی اه. از شما میزنی اخر آشوالد. مبارزه با این مسخرهات و مخدرات وظیفه ذات یعنی روحان ازامیست واقعا خجالات ها ورس این حرف هایی که شما تو رسانه مطرح میکنی باشه باشه باشه حالا باش. اینقدر خود تعذیت میکنی ببین با. بیا بذار من یه قلوب آب بدم بهت دهنت خوش شدهاتو. نه این کاری همیشه یه شماست آقا جو همین عمل کردی پلیس رو با سیاه نماهیه نکاس میدین شما خوب نیست بیا با. بیا این بچیابو بگی یه نزن با خود جوش نزن با با باقصی با. با دیوانم ندار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 دیگه کی کیه اخ سوخت یه آبی چیزی بده من آقا چیزی خفشانه دلبرم, چی دلبر چی چی چ... دلبرم دلبر این ساویه جدیدمونه سرحنگ اسمش چی گذاشتیم دلبرم دلبر ردگم کنی بیا با. ما هم که امال دادیم به تو دیگه بیچاره شدی رفت دیگه چیکار حالا خدمتی جافتتون میاد نه ببین آقا من حالم بعد از آب بده ای این بچیه دیگه خود خدا آب بیا. اینه اینو بده بده اینو بزن بعدا بعدا ببینم بول بول اینو اخ اخ اخ باجو یکی یکیام ز تو من بهتره دیگه فرار کنم خیلی جایش درختی میشه این چه چیزی شده آت آ آ آ آ آ آ آ این آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ این آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ جای باسا کجا میره خیلی حریش حالا میام سلام یالا باسا شما برسم پیمونه پیمونه سوری نه چیزه سمارچس مرکز, مرکز یاد منو جمع کنید ببرید می خونه می خونه دستی غم کتاهی از من کنجه جمعی ای خونه انقدر بستم مکن تا من با بر برخورده قانونی مکنم ساغین شب مرکز مرکز چی میگوی تو حالا ای آقا من چرا اینطوری تو مرکز وقتی عزیزی میره از دستمون وقتی بنا میباره از آسنون وقتی آدم رونده میشه